جلسه هفده قواعد فقه و سیاسه 17 آزره هزار و بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیت طاهرین المعصومین سیما بقیتنا الله فل العارضین روحی بر ماه العالمین له الفدا با توکل بر خدای متعال و توسل به پیامبر گرامی و اهل بیت اطهار علیهم السلام بحث اون را آغاز می‌کنیم بحثی که ما داشتیم در بحث تضاحم احکام بود و زحبتی از مرجحات باب تضاهم داشتیم ارز کردیم که تضاهم متفاوت از تعارض تضاهم در کتاب های موجود اصولی در بحث ترتب بعضی موقع بحث میشه بعضی بزرگ هم در بحث تعدل و تراجیح بحث میکنن و این مقوله ای کمک میکنه که ما جایابی بکنیم این نگاه که ببینیم اگر موادث تضاهم رو بخوایم پیگیر بشیم در کجا طبیعتاً باید ببینیم تفاوت تضاهم و تعارض چیست؟ تعارض مربوط به مقام جعل حکمه که ما اگر دو روایت رو ببینیم دو متر رو دو نص رو ببینیم که یا دو دلیل رو ببینیم که با هم تنافی دارند اگر تنافی اونها به مقام جل برگرده و به ای باشه که قابل رفت نباشه این قابل قبول نیست و نهایتا ما باید از یکی دست برداریم. لذا ما نمیتوانیم بپذیریم که دو دلیل تنافی کامل داشته باشن. و اینها رو ما باید رفت بکنیم اگر رفت نشد ممکنه به مقام مب... مباحث دیگهی برسیم بحث تساقوت ها برسیم یا هر قلقوی بحثی دیگه ولی این بران نشان میده که تعارض مربوط به عالم جعله و عالم سبوته اما ما در عالم امتصال نیازمند این هستیم که دو حکم رو اجرا بکنیم و دو حکم در عالم تزاهم ممکنه با هم تلاقی بکنن و این تلاقی اینها مربوط به عالم سبوت نباشه بلکه در عالم امتصال مربوط به مقام اجرای حکمه و الا دو حکم با هم تنافی ندارند و این دو است که ما به هر حال باید اونها رو نسبت سنجی بکنیم ببینیم اینها چه تنافی با هم دارند تنافی اگر به عالم جل برگرده این میشه تا عارض. اما تنافی اگر به عالم جعل بر نگرده بلکه به عالم امتصال برگرده این میشه تظهمم در واقع تظهمم دو مول بین دو مغوله است که با هم تنافی حکمیت مربوط به عالم جل ندارند. دو حکم جدا هستند وجود به انغاز غریق حکم مستقله وجود دیگه یه وجوب دیگه است حرمت دیگه حرمت یک حکمه حرمت دیگه از حکمه مستقل نیست. اما ما ممکنه این بحث رو پی بگیریم که آه در مقام امتصال اینها با هم تنافی دارند. خب تنافی انواع مختلفی داره. یک تنافی های جزئی ما می توانیم داشته باشیم یک تنافی های کلی می توانیم داشته باشیم خب تنافی های جز یا کلی چه وضعیتی دارند تنافی میتونه به گونه ای باشه که قابل رفع نباشه یک جای ممکنه قابل رفت باشه دوستان. تنافی اگر قابل غفل نباشه این تنافی امتصالی ما دوچار مشکل میشیم مجبور میشیم یکیش رو ترجیح بدیم بنابراین ما باید بگردیم دو مال خلاصه یک مرجه تزاهم بین گاه بین دو حکم دو حکم وجوبیست گاه و بین دو حرمت هست خب بعضی موقع بین چیه؟ بین وجوب و حرمت خب بین این ها ما باید یکی رو انتخاب کنیم چرا؟ چون که در تزاهم شما قدرت یکی دارید یک توان بیشتر ندارید نسبت دومی توان ندارید بنابراین باید این مباحث رو در نظر بگیریم که این تنافی چگونه است و تنافی آیا قابل رفع یا نه خب در مورد این انهای تنافی از ز... زوایای دیگه هم میتوانیم ب... نگاه کنیم ببینیم که این انهای تنافی چه میتوانه باشه خب تزاهم این مختلفی داره. اَشکال بین واجب و دو تکلیف وجوبی، دو تکلیف دو حرمت یا بین یک حرمت و یک وجوب این یک زاویه. موارد دیگه هم داریم. تضاهم در اینا تضاهم در تکالیف مستقل بودن. اما یه جایی هم تضاهم در قیود و واجبات غیری داریم. یک جایی تزاهم بین دو جز داریم این جز با یک جز ایدید که تزاهم داره در مثلا سلات شما یک خدزت بیشتر ندارید کدام رو امتثال کنید رکعت اول را بخ... اصداده بخوانید یا رکعت دوم خب این دو جز هست بین دو شرط یا تزاهم بین دو جوز ببخشید جز و شرط یک تعبیری از مرحوم ناینی میخوانم خدمت شما ای قبلا ای این رو عرض کردم که مرجحات یه اشارات کرده این مرجح بدلی و بین لابدلی و بدل چیزی که بدل داره چیزی که بدل نداره یک مرجح یک مرجح دیگه اونی که مشروط به قدرت شرعی است و اون موردی که مشروط به قدرت شرعی نیست و سایر مرجحات که اگر مرجحی از این مرجح های چنگانه داشته باشیم اونها مقدم میشه اگر هیچ کدوم از مرجحات نباشه تاخیره خب اینا در چه مواردی بود؟ در تکالیف تضاهم دو حکم تکلیفی من هم نراقی میفرمایند نایینی میفرماین اندر تحجیب الهم نیم انما ما هم بعد فقد المرجعات سابقه اینا رو کار نداریم میریم جلوتر که میگه هازا تمام الکلام فی تضاهم الحکمین فی تکلیف الاستقلالی اون مرجعاتی که چنگانه بود اشاره کردیم گفتیم اگر اونها در میان باشن یکی از اونها رو مقدم میکنیم و اگر نبود و این جمعی به جمیع المرجحات و الحكم وتاخیر تمام الكلام فی تزاحم الحکمین فی تکلیف الاستقلالیه این مرجحات چنگانه که گفتیم هر کدام بود اون مقدم میشه اگر بدل و لا بدل بود این مقدمه اگر اشتراط به قدرت شرعی و عدم اشتراط به قدرت شرعی بود این مقدم میشه و بعضی دیگه و نهایتا هم به اهمیت خب این مرجحات چنگانه مربوط به جایی بود که دو حکم مستقل با هم تلاقی کنند و تزاحم کنند در مقام انتصال پس تزاحم مربوط به مقام انتصال است با تعارض کار نداریم که مربوط به مقام جعل و ثبوت خب حالا میرسیم اشاره میکنین دو سه دیگه میفرماین تز و پسیه وحسین که تزاهم بین قیود واجبات غیریه و عمل کلام فی تزاهم فی باب القیود ولواجبات غیریه کما لو دار الامر بینه ترک جز این او شرطن ایه قسم ترک جز او شرطن او دار الامرو بینه ترک شرطن او شرطن آخر شما یه توان بیشتر ندارید یا این شرط رو باید روایت کنید یا اون یکی شرط رو یکیش رو مجرود کنار بذارید مثلا در سلات شروط مختلفی داریم خب کدام رو باید بذارید کنار او جز این و جز این آخر یا این موارد پس الان سه قسم حد در این واجبات در این قیود و حالا جز میشه قید داخلی شرط میشه جز خارجی پس بین جز و شرط ای مدل یکی بینه که ترک جزئی ای یا شرطی یکی ترک شرطی این شرط یا اون شرط بسم بعدی ترک این جز یا اون جز میفرماد فرمد فلهو ارزان عریض و یحتاج و الا بست من الکلام الا یسعه المقام جای دیگه باید بحث کنیم بین کان شیخون الاستاز قرطر رللهو في هذا المقام الا سبیل الاجمال الا انا قد اعرض نام بیانه لعجمال مزدکر و متظل و فی المقام مقرر مرحوم نام این کتاب فواید اصوله الاصوله خب دیگه شان رو نمیارن خب مورد دیگه از زاویه دیگه تضاهم میتوانه بین احکام واقعی و ظاهری باشه سه نحوه تضاهم اینجا ما میتوانیم سراغ بگیریم تزاحم بین احکام واقعی با احکام واقعی تزاحم بین احکام ظاهری با احکام ظاهری تزاحم احکام ظاهری با احکام واقعی که البته مرحوم نائینی در یه الگوی احکام ظاهری رو خب به احکام واقعی برگردانده اون حالا یک بحث دیگه است خب ما اینجا ببینید مرحوم شهید صدر می فرماید از این سه قسمی که اشاره کردیم مرحوم نایینی اون قسم قبلم مرحوم از اون بحث شهید یه تعبیریم از شهید صدر بخونیم در مباحث سل اصول که تقریر آیت الله سید کازم هایریز جیل به چهار صفحه 94 دو چهار فنه تزاهومه کما قد یتفق و بین حکمین واقعیین کما فی سلات و الازاله پس این یه قسم تزاهومه بین دو حکم واقعی مثال به سلات و ازاله نجاست دو حکم واقعیست کزالک قد یتفق و بین حکمین ظاهریین این هم قسم دوم او حکم او حکم واقعین و حکم ظاهری خب این هم قسم سوم بعد یه اشاره میکنم مندون سرایت تزاحم ال الحکمین البته این قسم سوم رو مبتنی بر این اشاره میفرمان که آقا تزاحم رو اگر بگیم که این تزاحم بین واقعی و ظاهری در واقع بر نمیگرده به تزاحم بین دو حکم واقعی امرو با این لحاظ خب و لو فرضنا ان واجب النفقه لم يكن تضاح من بين وجوب الانفاق بين عليهما لكون المنفق مالكن لما يكفي لنفقه هما معند و لكن كل منهما منهما بغل اشتباه في بين شخصين دو واجب النفقه داریم خب اینا دو نفر جدا هستن و بین اینا تنافی نیست به خودی خود لم یکم تزامن بین وجود بیل انفاق علیه ما اگر جایی باشه که این منفق پولش کاف به نفر کافی داره اگر مالکن لما یک فیل نفقته ما معن باشه بله اینجا خب تنافی نیست اما یک جایی میتوانه گونه نباشه مشکل داشته باشیم اون چیه؟ بین دو نفر اشتباه رخ داده باشه ولیکن که کلو من هما وقل اشتباه بین شخصین اگه این طور باشه ما باید بریم سراغ مباحث علم اجمالی که ببینیم به کی باید بدیم اگر بخوایم اگر مبنام این باشه که ما در مورد علم اجمالی احتیاط بکنیم و احتیاط هم یک حکم ظاهری باشه و منفق هم نتوانه بر چار نفر بده بله قرار بوده به دو نفر بده ولی چون که مستاقش اشتباه داره این دو نفر عملا هر کدام شما نمیداریم این نفر علف این آغاز یا اون آغاز نفر رو هم نمیدانیم این آغاز یا اون آغاز اگه بخواد احتیاط بکنه باید به چهار نفر بده اینجا تزاهوم بین دو حکم ظاهریه و ما فرض گرفته باشیم که تزاهوم به دو حکم واقعی سرایان پیدا نکنه و این مورد رو فکن این سفراتش هم اگر بخواید پیدا کنید مباحث سل اصول تقریرات آیت الله سد کازم حائری جلد چهار صفحه نود چهار و فکان مقتزل حکم ظاهری فی کل من ببخشید ولکن نه کل من هما واقع اشتیاق بین شخصاین. اون قابلیت هم نداشته‌اید دو نفر به خودی خود ولی اگر اشتباه در دو شخص بشه اگر اشتباه باشه فکان مقتزل حکم ظاهری فی کل من هما. هو بل عمل بل علم لجماهی بل انفاق علاش نفر اولش تردید داریم به این باید بدیم به اون در م تطویق رو و در ستا مفوماً مشک نندارم خب دو تا شخص در این دومی هم همینطور پس اون اولی رو ما میفتیم در دام علم اجمالی که بین این دو تا نفره و مبتلا میشیم به حکم ظاهریم دانو اند علاوه آنل احتیاطاتی مورد علم المجملی حکم ظاهریان. اگر بگیم که احتیاط در این مبنای این باشه که در مورد علم اجمالی المجملی حکم ظاهری و حکم واقعی نباشه. ول منفی قلم یکون قادرن علا ال انفاق علاو اربعتاش خاص فهونا قد و قد تزام بین حکمین این ظاهری یعنی من دون سرایان تزام اعلام حکم این این یه مورد. یا بگیم که فرض بگیریم که واجب و نفقه مردد بین دو شخص باشه ولی بگیم که احتیاط انفاق احتیاطی بر این دو نفر یه احتیاط شرعیه و حکم ظاهری باشه این حکم ظاهری خواهد بود ولی ممکنه اینجا تضاهم باشه بین این که یکی از اونها انفاق بر اون خلاص به حفظ نفس درگرده و نتوانه این بندی خود اگر این مورد رو با حالا با شخص دیگه ای که برای یه جایی به حفظ نفس برمیگرده با اون نتوان جمع کنه یه وجوب نفقه داره یه حفظ نفس داره اگر این رو در نظر بگیریم این میشه چی؟ تضاهم بین یک حکم ظاهری و حکم واقعی پس اون مثال قبلی برای بحث دو حکم ظاهری اما اگر تضاهم باشه بین این فرد و این که حفظ نفس باشه مصرف اهم باشه اینجا تضاهم میشه بین حکم واقعی و حکم ظاهری و کمالا و فرزنا پس اون بحث قبلی تمام اون تضاهم شد بین دو تا حکم ظاهری بین دو شخص هر شخصش خودش دو مستاق داشت حکم ظاهری این داشت اون برم داشت نتیجه میشد بین چهار نفر و اگر این مثال رو بگیریم به حکم تزاهان بین حکم ظاهره و واقعی می‌رسیم. به چه نفر میفرمایند کمال ما لغفر از و نفقه تقدر بین شخصین و قول نابه انه وجوب اله احتیاط به الانفاق علیه ما احتیاطون شرعی فقه و حکمون ظاهری این حکم ظاهریه ولیکن کان زالکه ل لمصرف اهم یعدی اله حفظ نفس مثلا خب این طرف ما آرام آرام میرسیم به یک حکم واقعی قادران علال جمع بین زالک المصرف و الانفاق علا طرف علم الاجمالی به وجوب نفق اون طرف جایی خودشو داره یه علم اجمالی هم داریم بین دو نفره پس اونجا میشه حکم ظاهری چرا؟ چون که تردید این وجوب نفقه بین دو شخصه و احتیاط هم ما گفتیم احتیاط شرعیه این وجوب احتیاط شرعیه و حکم ظاهری میشه بین اون دو, دو مصداقه واجب و نفقه و یه مصداقه این تضامن پیدا کنه با مصرف برای حفظ نفس خب اون طرف شد علم اجمالی و حکم ظاهری فیهین کان قادران علال جمع بین ظالک المصرف و الانفاق علا عهد اما. اون طرف ممکن بود ولی این طرف که با این فرد واج حفظ نفس اونجا دیگه دوچار مشکل میشه فرد تزاهم و در بین حکم ظاهری و حکم واقعی مندون سرعت ظالک علت تزاهم بین حکم واقعی خب این هم تعبیر نشان بود بریم پس در تقسیم ما دومال چی هستیم تقسیم بین تضاهم بین حکم واقعی با حکم واقعی تضاهم حکم ظاهری با حکم ظاهری تضاهم حکم ظاهری با واقعی عبارات رو که خاندیم این بزرگواران نشان میدن خب این اما در این میان گفتیم که آقا به شرطی که بر نگردیم سرایت هم نکنه از این طرف مرحوم ناینی نا این بحث رو دارن که احکام ظاهری رو احکام واقعی برگرداندند این هم یک عبارت طولانی ازشان میخوانم با فواعد الاصول جلد یک صفحه 252 ستو پنجه و دو میفرماین الامر الاول انهو لیس المراد من الحکم ظاهری الا, الا عبارتون الان الحکم الواقعی المهرز به والامارات والاصول این حکم ظاهری یه حکم واقعیه که از طرق و امارات و اصول به دست آمده و ما دو تا حکم نداریم که بگیم یکی حکم واقعی یکی ظاهری بلکه آجاهای ببخشید دیگه لحظه آیه چی ببینید آجاهای حسینی پرام ببخشید بگید بعدا تواس میگرم بل ليس هناك حكمان حكم واقعي و حكم ظاهری بئن یکون الشارع انشاء آن و جعلان بل ليس الحكم الا الحكم الواقعی المجعول ازلا و الحكم ظاهری عبارتون عن احراز ذلک الحكم به طرق و اصول المقرر شرعیت یه حکم واقعی داریم که توسط شارع در ازل جعل شده این الان خودش یک انشایی است اما این یه جعلی داره انشا مست خب اون که معلومه اما اون حکم ظاهری هم انشا و جلعل داره خب این به چه نفع به این انشا و جله؟ اینجوری که ما احراض بکنیم اون حکم واقعی رو از طریق طرق و اصول مقرره شرعیه خب چرا اسمشه بذایم این با میگییم حکم ظاهری و به خاطر اینکه این احتمال مخالفت با واقع داره ما از این حیث بهش میگیم ظاهری در واقع این حیث پس یه هیصی ما محتوانیم جدا بگیم اون اصول اون احکامی که با اصول عملیه به دست میارون اونها یه نوع حکم ظاهری ممکنه بگیم اما ما همون جایی که حکم واقعی رو به دست میاریم اونجایی که ظنیه اونجایی که قطعیه در هر دو صورت ممکن ما اشتباه کنیم به واقع نرسیم به اون واقع انشایی خدای متعال پس بنابراین اینجا اینم خود این احکامی که از اون طرق و اصول مقرر شهریه به دست آمده اینم میشه واقعی پس چه رسمش میشه میذاریم ظاهری و تصمیت و ظاهری لمکان احتمال مخالفت طریق و الاصل للواقع و عدم ایسال ما ممکن اشتباه کرده باشیم و الا فلا ظاهری الله و الحکم الواقعی لذی قامت عليه الامارات و الاصول مطلقا محرزتن کانت الاصول او غیر مهرزه ما حکم دو و در واقع نیست داشته باشیم همون حکم اولی از خیلی جهارم مصیبه دیگه تا به خاطر این که ممکنه اشتباه کنیم اسمشه میذاریم ظاهری و چه تصمیهش از این جهده ولی بله همونه فلایی سال حکم ظاهری الله و الحکم باشه چه غیر محرز ها ها و الذي قام عليه المذهب و یختزی اصول مختلف پس این مبنا مبتنی بر چیه اون دیدگاه ما مخطعه ای در خلاف مصلبه ما مخطه ها یه دیدگاهی داریم که آقا این احکام ممکن اشتباه کنیم ولی قراره که همون واقع باشه اون واقعا واقعا جنجال شده بله در نگاه مصوبه اون دیدگاه متفاوت میشه حالا البته ما دو جور تصویر داریم تصویر اشعری و تصویر معتظلی اینجا مقایسه میکنن با تصویر معتظلی به این صورت که میگن که اون اماراتی که قائم میشه موجب حدوث مسلحتی در متعلق میشه و بعد اون حکمی که ما بهش میرسیم امارهی که ما رو به اون حکم میرسانه این ممکن متفاوت با اون باشه با اون مسلحت واقعی تزاهن پیدا کنه یه مسلحت درست میشه در متعلق با قامه اماره این مسلحت ایجاد شده یه زاد و ولد شده با اون مسلحت اصلی تزاهن پیدا میکنه و اون مسلحتی که در این طریق و اماره هست عالب میشه بر مسئله واقع بنابراین ما دو تا حکم انشائی و انشائی داریم که شاره هر دو رو جعل کرده یکیش به اون واقعیت اولی میخوره یکیش هم به خاطر به اون معده تریق میخوره و بنابراین اگر این مبنای و رو ما داشته باشیم دیگه نمیشه اسمشو بذاریم تس... حکم ظاهری بلکه این هم یه حکم واقعی حکم واقعی دوم چرا چون که اینجا یه زمینه ایجاد شد زمینه به وجود آمد که در اون حکم واقعی دومی درست شد خب البته مرحوم شیخ هم این موارد رو فرمودن اشان اشاره می که اونجا سه طریق سه وچ رو اشان فرموده بودن این اون وچه دومه حبارات رو بخوانم نه هم بناهن اصول اصول به من المعتزلم من ان قیام الاماره یوجه به حدوث فل في المطلق و یعنی تزام بین ها و بین المسلحت الواقعی خود این شد یه واقعیت جدی تزام بین این دوتا میشه کدام غالب میشه و تکون مسلحتم تکون مسلحتم مسلحتم مسلحات متعدد طریقه غالبا الان مسلحت الواقع مطابق دلیل باید باشیم دیگه اگه تابع دلیلیم پس این الان بر اون واقعیت که ممکنه ما اشتب... بهش نرسیده باشیم غالب میشه یک البته اینجا میشه بگیم که آقا خب خیلی جاها عین همونه دیگه مسلحت جدیدم هم برفرض بگیم با اون مسلحت قبلی یکی باشه دیگه چگوناست ولی اونا به هر میخوان میگن آقا کنن که چرا ما باید به امارات عمل کنیم در واقع در پاسخ به کسانی که میگن آقا ممکنه اشتباه کنیم این توجیه میخوان بکنن که آقا ممکن اون باشه ولی خب به حال پیگیری این بیشتره ولی این مسلحت رو میزنن به چی؟ به خود متعلق متعلق حاکمه یه موقع میگیم مسلحت سلوک یه موقع میگیم مسلحت خود متعلق اینجا الان این دیدگاه میره سراغ مسلحت معدای طریق که میگه این مسلحت دومیه پر رنگتره تکون مسلحت و معدت طریقه غالبتن علا مسلحت الواقع ولی خود این هم یک واقعی یکون هناکه حکمان و انشاعان از طرف خدا و یکون لشاره جعلان احد هما به بالواقع الاولی و ثانی متعلقن به معدت طریق ولست ولیکن بناهن الهازان لایم بقیه تصمیت و که حکمن ظاهری هست پس چرا؟ دیگه ما تبقیه دیدگاه اسم این رو نباید بذاریم ظاهری چون چیزی ایجاد شد مثلت ایجاد شد بعد یه ای حکم ایجاد شد بل یکون هی نزن این حکمن واقعی این که این سانویه رو ما دنبال کنیم و این هم میشه اون وچه دومه از تصریبی که شیخ در اول بحث حجیت زن دارن خب این هم پس یه بحث خب پس ما الان تضاهم حکم واقعی واقعی داریم حکم ظاهری ظاهری داریم حکم ظاهری با واقعی داریم با این تبصره که مرحوم نائینی از زاویه دیگه برالشان میگن همه اینا واقعیه مون میشه بگیم که آقا این به معنی از ظاهری باشه اون معنی ظاهری اصول رو هم جدا بگیریم این منافات با اون تضاهمش شاید بگیم نداشته باشه خب این هم یک بحث بعد نکته دیگه مرحوم نائینی میفرمایند که اگر امارات تنافی داشته باشند و ما قائل به سببیت باشیم، نظریه سببیت باشیم این تنافی امارات بر مبنای بر این مبنا که ما قائل به سببیت باشیم از مصادیق تضاحم خواهد بود. پس ما تنافی امارات رو معمولا به چی می بردیم, می بردیم به تاروز برمیگرداندیم بلکه قبل قدیمی ها اصلا کل تظهمم رو زل تعارض حساب می کردند. و مرجحات باب تعارض پیاده می اهل سنت هم همینطور البته یه جاهایی تفاوت هم دارن ولی اونا اصطلاح ندارن یه مقداری میله به این برحال بوده که یه جاهایی تضاهم رو میبرن میبرن می برن زیل تعارض هرچنین بحثای شبیه اینها هم که ما داریم تر می کنیم اونا دارن مفصل تر همچه بازی موقع بحث میکنن. کنن یه مقدار شبیه اما تنافی امارات باید بر زیل تعارض اما اگر قائل به سببیت ما باشیم مرحوم نایینی فهم بودن این دیگه میشه اینم میشه از مصادق تزاهم فواه دل اصول جلد چهار صفحه 26 و من جملت افراد تزاهم تزاهم الامارات المتعارضه علال قول به سببیت فیها لانهو علا حاز القول تندر جل امارات المتعرضه فی سغرا تزاهم از مسادیق کبرای تزاهم خواهند بود اینا مصداق میشن سغرا میشن برای بحث تزاهم و لابده خب حکمش چی میشه لابده منال حکم تخییر فل الاخذ به عدل الامارتن لتقیید اطلاق الامر بالعمل به کل من هما به حال عدم العمل بالاخرام و هینه زن دوباره میخوارم توضیش میدم و هینه نزن یستقیم تنظیر و بابل اصول العملیه به بابل امارات خب نتیجه چی میشه؟ اول پس این میشه مساق تضاهم بعد ما باید چه کار کنیم؟ ما در بحث تضاهم یه جایی میگیم اگر مرجه باشه اون مرجه پنجکانه ششکانه یکیش باشه اون رو تطبیق میکنیم اما اگه مرجه نباشه تخیر اینجا خب ما باید یک قائل به تخییر بشیم در عمل به این اماره یا در عمل به اون یکی اماره بعد اگر این کار رو کردیم نتیجه چی میشه ما یه امری داریم که گفته آقا به همه امارات عمل کن پس این دوتا اماره که داریم بعد به اون عمل کنیم. اما اگر ما به یکی عمل نکردیم، اون سر اون... به این یکی عمل نکردیم، عمل به اون یکی سر جا دیگه گوچو به عمل به اون یکی. اینجا میفرمایند اه... اه... ما اطلاق امر داریم که آقا باید به اینو عمل کرد. ولی اگر چون این دوتا امارات داشتیم که چون این تنافی پیدا کنم بر مبنای سببیات نتیجه این خواهد بود که ما اون وجود به عمل به هر دو رو قید باید بزنیم چه قیدی بزنیم این قید ما اینه که آها اگر به این عمل نکردی با اون کی عمل کن با اون عمل نکردی باید به با اون یکی عمل کنیم نمیشه چون به این عمل نکردی اون یکی رها کنیم پس اینجا بعد از اینکه دو چهار تزا بردیمش زیل تزاهم نتیجه ای خواهد بود که اون امر مطلق رو باید چه کار کنیم باید قید بزنیم خب اون پس یه مطلقی داریم که میگه به هر دو عمل کن وقتی اینجا رسیدیم به نحو تخیری یکی شو باید انتخاب کنیم ولی اون اطلاقی قید میخوره و ده حالا که شد تضاهم و لابده من الحکم به تخییر فلعقص به عدل امارتان دوتر عمل کنیم یا این یا اون پس حکم تخیر. حالا که عمل کردیم نتیج لا بود من الحكم بتاخیر فالاخذ به تخیر فل و الامارات لتقید اطلاق الامر بالعمل به من منهما به حال عدم العمل بالاخرى به اینکه نمیشه عمل کنیم پس این قید ما یه قیدی داریم اینجا مهین زن یستقیم تنظیر و باب الاصول العملیت به باب الامارات اگه اینطور نگاه کنیم اصول عملی میشه تشبیه کنیم تنذیر کنیم که به باب امارات خب یه مورد دیگه از مصادیق تضاحم اینجا مهمه که ما ببینیم به کدام یک از این بحث‌های تضاحم بین احکام ظاهری و ظاهری ظاهری و واقعی واقعی و ظاهری داشتیم یه مستاق اینجا خدمت شما عرض میکنیم ما الان یه جایی یک مصداقی داریم به عنوان فقیه علم اما غیر کفعه پس یه فقیه اعلمی داریم که غیر کفعه در مقابل یه فقیه دیگه داریم اعلم نیست ولی کفعه پس دو تا ویژگی داریم اعلمیت کف بودن یه نفر ویژگی اول رو داره دومی ویژگی دوم رو داره پس اعلمیت و کف بودن رو ما می‌بینیم که دو نفر مثلا هر کدام رو دارن ما کدام رو مقدم کنیم اینجا جناب آیت الله ست کازم هایری که کتاب های خیلی خوبی هم در فقه و هم دارند در بحث ولایت امرو این ها و از شاگردان برجس شهید صدر ایشان البته قبل از شهید صدر شاگرد بزرگ دیگه بوده ولی بعد میام محظر ایشان رو بهروند میشه مرحوم آیت الله شاهرودی از شاگردانی که بعد از ایشان آمدن در واقع هم شاگرده شهی سطرن هم شاگرده است ماری. ولی ایشان بزرگوار هستن ای خب الان دیگه بنده خود حسال نداره من یه زمانی خودم درس ترتوب ایشان میرفتم ای خب اونقا حال و خیلی به هر حال با علمیت خیلی خوبی وارد بحث میشدن و برال توانمندی خیلی عالی دارن اینجا این رو بیان می‌فرمایند که می‌فرمایند اگر این دوتا رو ما در نظر بگیریم بحث از تظاهم این بین این دوتا از سنخ تظاه بین اخکام ظاهری و احکام واقعیه خب اگر چون این باشه نتیجه چیه؟ بر اساس این که این دو تزاهم بین حکم و حکم واقعی گرفتن تقلید فقیه غیر اعلم کفر رو مقدم کردن در واقع و ایشان بین در بحث فتاوای مرتبط و فتاوای غیر مرتبط با احکام ولایی هم البته تزاهم قائل شدند. یعنی تمایز قائل شدند. یه فتاوایی داریم مرتبط با احکام ولایت، یه فتاوایی داریم غیر مرتبط با احکام ولایتی و لذا بین این دو تضاهم قائل شدند و نتایج متفاوتی برای هر کدام لحاظ فرمودند. ایشان در جلد مباحث الاصول البته ببخش این بحث حالا تقریرات بحث شعی صدر است که ایشان تقریر فرمودن من اصلاح کنم جلد 4 صفحه 93-95 البته شاید در پاورقی مقرگره مال, اگر مال خودشون باشه شاید مال شای نوشتم در متن شای صد ولی تو دیدم ورایت کلاسیک شاید مال پاورقی بوده. هازا ولنا طریق سانن احتمال مال شاموشم درست نوشتم در متن که مال در احتمال پاورقی بر بحث شای صد باشه. ولنا طریق سانن لاثبات كون تقليد الفقيح الكوف لا للعالم غير الكوف یوم کنو الالتجا حتی بنوان علال احتمال ثانی الازی انتجل فصله بین القیادت و تقلید اشان میخوان تفکیک کنم بین رهبری و تقلید و میفرماین حووه دعوا وقوع تزاهم بین حکم ظاهری و حووه وجوب و تقلید العلم و حکمون واقعی و حووه وجوب و تحییت مناخ لقیادت الکف للمجتمع اون کفیت برای رهبری یعنی یه بحث اعلم صرف بحث در صرف اعلمیت نیستا یعنی این کف برای چیه توانمندی برای رهبریه یه نفر اعلم ولی غیر کف برای رهبری و بالعکس میگن آقا اینجا تضاهمه بین یک حکم ظاهری حکم ظاهری چیه؟ وجوبه تقلیب ده اعلمی حکم ظاهریه حکم واقعی چیه ما واجبه بر ما که برای رهبری فرد توانمند و مناسب جامعه زمینه سازی کنیم و حوه وجوب و تهیه اتل مناخ زمینه سازی کنیم لِقِيَادَتِ الْكُفْءِ لِلْمُجْتَمَعِ برای تقریصی که توانمند باشه برای اداره مجتمع مجتمع یعنی جامعه در عربی ما در عربی محاصر نگیم فقه الاجتماع اجتماع بیانه عامه میشه بگیم الفقه اجتماعی روی کرده اجتماعی در فقه اما اگر خواستید بگی جامعه بعد بگیم مجتمع جمعش هم جمع. مجتمعات با یک حکم وجوب واقعی داریم زمین سازی برای رهبری و قیادت فرد توانمند از لو به تقلید غیر الکوف ال... از لو اص تقلید دو لغیر الکوف از از الکوف تکبینن علل قیادم اگه تقلید از غیر کف باشه اون کف اصلا ناتوان میشه از رهبری. لنه تفکیک که بین المقامین به فرض القیاده لما کلام کلاما و حجتا فل احکام شریعه خلاف و طبعه آمت ناس شما که میخواید رهبری رو بگید که گردنه این بنده خدایست و این حرفش باید حجت باشه اگر بخواید بگید که حرفش حجت نیست این رو خب معنی نداره با عرف جامعه نمیسازه سازه طبع مردم با این سازگاری نمی نداره نمی بگید که ما بین دو مقام تفکیک کنیم بگیم که این رهبره ولی کلامش حجت نیست بعد از اون بر اگر بگیم که مردم از علم غیر کف در احکام و فتاوا تقلید کنن و از فقیه کف تقلید نکنن اون فقیه کف دیگه نمیتوانه رهبری کنه فلاو اتبع فلاو اتبع ناسو ال اعلم غیر الکف افل ال احکام و الفتاوا دون الفقیه کف اجاز الفقیه و ان انقیادته اون طرف اون وجوب هست این اون حکم واقعیه وجود تقلید اعلم حکم ظاهریه پس کدام باید مقدمشه اون طرف خب انگولت ما ممکن بگیم که آه تقلید کف این حکم و این حکم ظاهریه تقلید کف حکم ظاهریه بعد تا اینجا بیفتیم در بحث مسئله سلوکی و اینجا ما بریم به تبعیت از مسلحت سلوکی اقدام کنیم یعنی بگیم که در تقلید مردم از او یه مسلحتی هست اون مسلحت هم چیه؟ مسلحت زمین سازی برای رهبریه که ای یک حکم ظاهری رو به دنبال داره در صورتی که ظاهر عدل احکام ظاهری اینه که یک طریقیت محض دارن برای حفظ مساله احکام واقعی که دوچار تضاهم شدند پس ممکنه کسی این رو بگه به که آقا این حکم ای در واقع تقلید کف این حکم ظاهریه ما هم بریم بعد هم به این نتیجه بسیم که این بحث تبعیت از مثلت سلوکیه چرا؟ چون که خود تقلید اینا مثلت داره در صورتی که برخلاف این مقوله ظاهر احکام ظاهریه که اینا تقلیقیت محض دارن پاسخ چیه؟ که حجیت فتوه خودش حکم ظاهریه بحث رو میبره سوره خود حجیت فتوه خوده حجیت فتوه در ذاتن یک حکم ظاهریه که در مقایسه با احکام ظاهری دیگه باید بگیم که این حکم ظاهری به خاطر حفظ احکام واقعیه در صورت که ما نیاز داشته باشیم یک حکم این بین احکام تا این تکلیف بخوام پیگیر بشیم که احکام حفظ بشن یه تضاهم حفظی داشته باشیم این حکم و احکام ظاهری این ویژگی رو دارن که در تضاهم حفظی جعل شدن اینجا اینام بگیم که این فتوا هم خلص حکم ظاهری است این پاسخ ماست ولی رأی اعلم تامیاً سقوطش از خودجیت و اینکه ما بریم سراغ رأی غیر اعلم این نتیجه تضاحم بین یک حکم ظاهری و یک حکم واقعی حکم ظاهری حجیت رأی اعلم حکم واقعی وجوب زمین سازی برای رهبریه و مشابه شما در سایر ابواب داریم خب این پاسخ حالا به اجمال و تطویلی داره که بعد دوباره عرض می‌کنم پس این انقولت رو ببینید انقولت اینه که این وجوب تقلید کفر رو هم بگیم ظاهری بگیم لا یقال ان هاذا یعنی ان وجوب تقلید الكفر الذي هو حكم ظاهری ایزن اسبحتها به ان این وجوب تقلید اسبحتها به ان لمصلحت سلوکی این وجوب ظاهر این حکم ظاهریه بشه تابع مثل سلوکی ای انه هناکه مسلحتون فی نفس تقلید هم لهو و هیه مسلحت و تحییت المناخ المناسبه للقیاده اثرت سرت علا تاین ظاهری فی هین ظاهر عدلت الاحکام ظاهریه هیه طریقیت البحتم لحفظ مسال الاحکام الواقعیه. مظاح من فی بیننا و فل حظ ندل جل خب اگر یکی دو, دو دقه استارت به فرمایید ادام وصل رو از خواهم کرد الحمدلله همدالار رو